فصل اول ابتدای انجیل ایسای مسیح پسر خدا در کتاب اشعیا نبی آمده است که رسول خود را پیشاپیش تو میفرستم او راه تو را باز خواهد کرد نداکننده در بیابان فریاد میزند راه خداوند را آماده سازید و مسیر او را راست گردانید یحیای تعمید دهنده در بیابان ظاهر شد و اعلام کرد که مردم برای آمرزش گناهان باید توبه کنند و تعمید بگیرند. مردم از تمام سرزمین یهودیه و شهر اورشلیم پیش او می و با اعتراف به گناهان خود در رود اردن از دست او تعمید می گرفتن. لباس یحیا از پشم شطور بود و کمربندی چرمی به کمر می بست. و خوراکش ملخ و اصل صحرایی بود او اعلام کرده گفت بعد از من مردی تواناتر از من میآید که من لایق آن نیستم که خم شوم و بند کفشهایش را باز کنم من شما را با آب تعمید می دهم، اما او شما را با روح القدس تعمید خواهد داد در این هنگام عیسی از ناصری جلیل آمد و در رود اردن از یهیا تعمید گرفت. همین که ایسا از آب بیرون آمد، دیر که آسمان شکافته شد و روح القدس به صورت کبوتری به سوی او فرود آمد، و آوازی از آسمان شنیده که می تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. فوراً روح خدا او را به بیابان برد، او مدت چهل روز در بیابان بود، و شیطان او را وسوسه می کرد. ایسا در بین حیوانات وحشی بود و فرشتگان او را خدمت می کردند. پس از بازداشت یحیی، عیسی به بستان جلیل آمد و مجده خدا را اعلام فرمود و گفت، ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است، توبه کنید و به این مجده ایمان آورید. وقتی عیسی در کنار دریاچه جلیل قدم می زد، شمعون و برادرش اندریاس را دید که تور به دریا میانداختند چون آنها ماهیگیر بودند عیسی با آنها فرمود به دنبال من بیایید تا شما را سیاد مردم گردانم آن دو نفر فوراً تورهایشان را گذاشته و به دنبال او رفتند کمی دورتر عیسی یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا را دید که در قایقی مشغول آماده کردن تورهای خود بودند عیسی آن دو نفر را نیز فوراً پیش خود خواند آنها پدر خود زبدی را با کارگرانش در قایق ترک کردند و به دنبال او رفتند آنها وارد کفرناهم شدند و همین که روز سبت فرا رسید عیسی به کنیسه رفت و به تعلیم پرداخت مردم از طرز تعلیم او حیران ماندن، زیرا برخلاف ملایان یهود او با اقتدار و اختیار با آنها تعلیم میداد در همان موقع مردی که روح ناپاک داشت وارد کنیسه شد و فریاد زد ای عیسی ناصری با ما چه کار داری آیا آمده ای ما را نابود کنی من میدانم تو کی هستی ای قدوس خدا اما عیسی او را سرزنش کرده گفت ساکت شو و از این مرد بیرون بیا روح ناپاک آن مرد را تکان سختی داد و با فریاد بلند از او خارج شد همه چنان حیران شدند که از یکدیگر پرسیدند این چیست چه تعلیمات تازه‌ای است و با چه قدرتی به ارواح ناپاک فرمان میدهد و آنها اطاعت می‌کنند به زودی شهرت او در سراسر جلیل پیچید آنها از کنیسه بیرون آمدند و با اتفاق یعقوب و یوحنا یک راست به خانه شمعون و اندریاس رفتند. مادر زن شمعون داشت و خابیده بود. به محض که عیسی به آنجا رسید او را از حال آن زن با خبر عیسی ایسا پیش او رفت دستش را گرفت و او را برخیزانی. تمش قد شد و به پذیرایی آنها پرداخت. وقتی خورشید غروب کرد و شب شد همه بیماران و دیوانگان را پیش او آوردند تمام مردم شهر در جلوی آن خانه جمع شدند عیسی بیماران بسیاری را که امراض گوناگون داشتند شفا داد و دیوهای زیادی را بیرون کرد و نگزاش آنها حرفی بزنند چون او را می شناختند سهرگاه روز بعد عیسی خواب برخواسته از منزل خارج شد و به جای خلوتی رفت و مشغول دعا شد شمعون و همراهانش به جستجوی او پرداختند و وقتی او را پیدا کردند به او گفتند همه به دنبال تو میگردند عیسی با آنها فرمود به جاهای دیگر و شهرهای اطراف برویم تا در آنجا هم پیغام خود را برسانم چون من برای همین منزل آمدم ایسا در سراسر جلیل میگشت و در کنیسه پیام خود را اعلام میکرد و دیوها را بیرون می میده یک نفر جزامی پیش عیسی زانو زد و تعاوضای کمک کرد و گفت اگر بخواهی میتوانی من را پاک سازی دل عیسی به حال او سوخ دست خود را دراز کرد او را لمس نمود و فرمود البته میخواهم پاک شد بورن جزامش برطرف شد و پاک گشت. بعد ایسا در حالی که او را مرخص می کرد با تحکیل فراوان به او فرمود مواظب باش چیزی به کسی نگوی بلکه برو خود را به کاهن نشان بده و به خاطر اینکه پاک شده ای قربانی را که موسی ها کرده تقدیم کن تا برای شفای تو شهادتی باشد. اما آن مرد رفت و این خبر را در همه جا منتشر کرد به طوری که عیسی دیگر نمی توانست آشکارا وارد شهر بشود بلکه در جاهای خلوت شهر میماند و مردم از همه طرف پیش او می رفتند